شیطان با مخلصان برنمی و سلطان با مفلصان. وامشمد آنکه که است، گرچه دهنش فاق باز است. کو فرض خدا نمیگذارد از قرض تو نیز غم ندارد. امروز دو مرده بیش گیرد، مرکن، فردا گوگت تر بی از اینجا برکم فردا گوگت سر بی از اینجا برکم